الحمد لله رب العالمين و صل الله علاء سيدنا و رسول الله و آل الطيبين الطاهرين المعصومين الله تجاعيد علائم شناين. اللهم جميع المستبدين معهم نعى رحمتك يا رحمه رحمي. از شدت روي تندیم بات اصطعاً متره ز کلمات مربوط شيخ انصاري اجمالا تفاصیلش رو کدهای مراجعه کنند در حد این که سرخط کلماتیشان و بعد برای نمونه چون مثلا منقه صحبت فرمیدن متعرض کلمات هسته استاد در نسبه های فقاهه شدیم و یک مقداری دیروز بس خلق شد حالا باز برگردیم به کلمات محومه استاد چون منظم تقریبا صحبت فرمیدن فقط دیگه اینجا ایشون مثلا از عدلی رو که ذکر کردن برای مناقشاتی کردن بعضی از مناقشات ایشون رو یه جواب میدیم مطالب کلی رو میذارم آخر برس ایشون پرمدن اقوال قال شیخ غنائم مفسود ایشون از عباراتی که ایشون اوردن عبارات غنائم مفسوده بحث غنائم در کتاب مفسود که هست شد بحث غنائم رو یا در کتاب ما ها در بحث جهادوی اینا ها میارن یا در بحث سیر با قول خودشون در بحث غنائم در مقصود عبارتی داره که اگر کتاب بود اون کتاب رو چه بکنن من بنده توبی ایشون از اون عبارت این رو از اون عبارتی که در مقام هست یعنی از کلمات وقاها مربوه استاد فقط همین رو عبردن توضیحی هم ندادن فقط نوشنه علامه هم در کتاب تسکر بحث قناعه همینجور بحث رو مفرح کرد <تصفح> توضیحی هم مرحوم استاد راجع به این مطلب ندن کلمات دیگران هم در اینجا ذکر نکنن فقط نوشتن که اجماع روشن نیست بخاطر اینکه مثل صحابه دائق مثلا مخادر از کردم که این رو مثلا ما الان دیگه توضیح میدیم شیخ بحث رو در قناعه مفسود توضیحی <تصفح> در حقیقت کتوب وحل سنت بوده توی بخش قناعیمشون داره، الان هم در کتوب وحل سنت کتاب ابن قدامه بیشتر نگاه کنگاه داریم جلد نه بود در اونجا سرکه این در اونجا ایشان همین مسئله رو داره در قناعیم و کرارا از کردن مرغوم الله قدس الله نفسه رو تقریبا تبین مقنی نم و توی ازهان مینی که طب مغنیه نه مغنی نیست خیلی تشابه با مغنی داره علامه کتابیشون خیلی تشابه داره لیکن از کردن کتاب مغنی مال ابن قدامه بزرگ را امون چون یک سر درده اید اونم ابن قدامه ها. هر دو ابن قدامه اون ابن قدامه یعنی امون سال کتاب مغنیه که شعر منتخب منتجب اون زرگیه که از علمای حنابله هست کتاب مغنی مال اب یکی از فرخ های بسیار مبسوطه اهل سنته لیکن خود ایشان همبلیه ها در فرح هنابله و خود احمد بن همبل و هنابله خیلی بیر فقاحت نهار به حدیثی شده مرد اما اصابه این کتاب کتاب مفیدیه مغنی ابن قدامه نسبت به خودش واقعا کتاب بسیار خوبی. و خود ایشان خود مغنی یه رسائی مهد میگاره خود ایشان باز مهد می داره. پسر برادر ایشان شرح داره بر اون مرد پسر برادره اونم ابن قدامه هست ابن قدامه شرحش مرد و از شرح های کبیه این متن کتاب مالا اموشه که عموی ایشان که ابن قدامه باشه شرح کتابش در کتاب زرگی اینا منتجه, منتجه. منتجه. داره. کتاب زرگی که از علمای هناوله شرح اونه و اون کتاب سری است این اون شریه لُمعه است اما این کتابی که خودش نوشته معنی که خود ابن قدام نوشته مفصلتره مرتفع نیست اما از اون منظر خیلی شرقی کمی ایش با تکرار در ایشان یک شرحی بر کتاب اموش نوشته نه برغونی بر اون متن فقیه یک شرحی بر اون نوشته که معروف است به شرح الکبیر این اشرح اش الکبیر در اختیار علامه بوده بیشون تذکره و طبقه همین کبی رو نوشتن البته خود این قدامه یه هم زن مساله که از اهمونشه از مغنیه لیکن کتاب علامه تطابقش و متنش با این شرح کبی بیشتر میکنه تا به بلا اون مغنی هم خیلی از این شرح کبی رو زیاد از گرفته به هر حال این کتاب اسمش شرح کبیره و خیلی از فاصله زمان می‌نوزن بعد از زمان کدی مثلا 10 سال 15 سال گذشته در اثر علامه خیلی هم اون قدیمی حساب ابن قدامه که سر را داره تعجب چرا زود به علامه رسید کتاب با که در علمای اهل سنت الا در این کتاب علامه هم در اولش مقدمه اشاری به این مطلب نداره من نمی‌دونی که من مثلا اصلا بعضی مثلا میگه این همونه که چند صفحه این همون خیلی اینه واقعا برام ما کرده چون کتابو تصفیره الان ناقص کامل نیست درفه کامل نیست و گفته شده کامل بوده به ما نرسیده گفته شده جو نشدن نیست خیلی خاجع معذور درموند منم نمیدونم فعلا واقعا اینو کامل نمیشه به ما نرسیده یا اصولا موفق نشدن برای تکمیل کتاب شاید تو آخر می‌خواستن بنویسن اما انصافا به خدا خیلی کتاب سرقت ادبی داره یعنی انصافا باز قبول بکنیم خیلی عباراتی چون عین کتاب کبیره اصلا بعضی وقت که تغییر نمیده موافقه بوده تغییر این عین کبیر رو اعلان عین این, این عبارت شرکتیری و بدون اشاره به خیلی انصافش حتی لاحظ بود برای ما چون اولین بار نجب به هو مؤتخر و ادیت چاپش این بخش بیه یه جلد چاپ شد در تطویان اخیر تحقیقات چاپ میکن میکنه ما این ترشیم نجفی من واقعا که این خیلی خیلی از اون کتاب گیرسه خب و اسم نبرده این اسم نبردن خیلی مشکل برای یک نو سرقت عذبی هم نبوده اینکه ببرم من جواهر هم گویا یک صفحه شد مثلا عین مثال کران درس این داره نمی دونم شاید حالا جریان تیره برای این بوده ریاض الوسائل هم ریاض هم ریاض مصائل هم عین عبات لؤه رو میاره اسم نمی بره انرشی میگن خود ایشون گفته که من دیدم عبارات زیبای شر لؤه و خودم موافق بودم آوردم یعنی بهش گفتن خب کی که این عبات عین عبات شلومه یعنی دقیقاً عبات شلومه رو شلوم خود بیذونی که اسم بردن گفتیش این تو نرم ولی نه راست دروغه به هر این هست، این الان خیلی مقبول نیست حالا مثلا بود ما این کار میکردن فعلا خیلی مقبول نیست وقتی کتاب دفهمون در همین شراکتیر طبعا عبارات شراکتیر از تقریباً تقلیدا شبیه خود مغنیه مثلا شراکتیر در ذیل مغنی چاپ شده اما مطالبشون زیدش نیست مثلا این مطلبی که در این جان شراکتیر چند صفحه با مغنی فرق داره اما به خاطر تنظیم کتاب فرق شده که شرکبیر هم همینطور خلاصه در اباض کبیر اینطوره که در موقعی هم آمده اگر کتبی باشه کتب به تل و لغت اینها باشه اشکال نداره و هم اگر کتب غیر باشه مثل توراتون اینجوری تورات انجیل در اصل تورات انجیل باشه اگر قابل انتفاع به ورقش و جلدش اینها باشه به الا علیه امتشای خود نمیگه یوم در نهر چیزی نشه و لا یجوز و بیوها اون ادب جوابتای ان داره تا کام بحث این دستور اون تو بحث بدی دیگه تو آخر خود عبارت مغلی هست ها خیلی نفهمن که علما ما اجازه دادن که تو خود عبارت اهل سنت بحث قنایم هست ولا یجوز بیعه ها چنین جن مشایخ خودی مثلا ما اش برابر لازم جو بیهو آی خودی مجمل عبارت مخصوصه پس بنابراین نقل عبارت مخصوص یا تذکره علامه خوبه اشکال نداره اما این توضیح باید داده بشه که این مطلب به این در غنائین گرفته شده چون این ممکنه داره تاثیر باشه که مثلا در اینجا ولای زبیرها اینا نظر حاکم حاکم اینا رو نخطوشه این کتاب‌ها در این جای نگهداره در اختیار علما قرار بذاره کلا مثلا اون با مثال این غیر از اون مسئله از زوایایی است که ما داریم. این استاد اول این عبارت رو و همین مقدار استفاضه نه عباراتی اجماله <متصفح> بعد نما و نه و فی اگر غنامه تکسره کسی الان تو کامپیوتر بخواد من, من عبارت مغنی ابن قدامه تو عیننه. میخوام ببینم به اون چه مقدار داره. عبارت مغنی ابن قدامه از اباضی شیخ طوسی کمتره مثلا 2 سطریه. اباضی شیخ قدامه کمتره. حالا من مراجعه بعد استاد تفسیر کردن کتب زلال رو به جزاگانه بحث میکنیم این قسمت رو بررسید نمی کنیم خدا آقای مراجعه کنیم بعد استاد استدلال فرمودن اول قدستو استدلال علا مثل حفظ به وجود یک حکم العقل به وجود به قلع ماده خساس از کدر امتیاز مرمون استاد استدلاله ها رو مرتفت کردن اواز شکری کم منتجم نیست منسجم هستنی خیلی واضح می تحقیب بنده رفیه اشون فهمدن امکان مدرک این حب حسن عدل و قبع ظلم به این معنا که قلع ماده فساد حف... آن و حفظه ها ظلمون وحت کن لشاره آنی که در بحث اصول تجیب درسته میگیم این بحث حد کن از المولان زیاد با خوندید یعنی مواند تقرار بکنید اینا ذهنیتش این بود که مثلا اسیا و مسیا دیگر هر که مولد مبانی حقوقیشو مفصل شرح میکنند و همچین از دو سه دارند با سوال دادن میکنن. هر کنده شار از کن که نشانه ام اینقدر مهمش بوده که که سردرد ما میتونه هر که رو کند. هیچ هر برای شاری است هر خودمون خودوندی چه حد کی میکنه. هر زلمان علی شار نه زلمان علیه خیر دو علی لا لازمیه علاوه و جبهه از زور فجامی ام نواره. فرند از از زور راجع نه. و ال لجه و الله و امبیاب و اوسیا الممانه تو انظل تکمین من که نفهمین این چه اشکغالشون فر ده چه ربطی بین ما و خدا هست در این بهسه البته این هست ما بنا با تو بحث اصول هم م این بحث خود نش بحث خیلی میگی میوانیم یه بحثی هست در و سق که ذاتی است یا ذاتی نیست یه ترری هم داره عدهای از معمنتظری یا معتظله حسن وجزاتی رو نسبت به افعال الله هم تصور کرد این هست که نسبت به افعال الله تعالی بحث حسن و حسن قبر نیست اونجا همین نظریه فعقل عملی در افعال حق و جاری قرار نمی گیره یعنی به عبارت اخرا این عدلی که ایشون میفرماید این در جایی است که اختیار باشه این حسن قبر عقلی منشأش که یعنی و این حکم هم یک حکم عقل عملی است در مقابل حکم نظری یعنی که ارجاء بدیم عقل عملی رو به عقل نظری که دیگه حالا هم تو بحث اصول گفتیم توزیع شولا هم اینجا از کنید چند تا احتمال هست یک احتمال چیه اصلا عقل عملی رو ارجاء بدیم به عقل نظری دیگه حالا بخوام توضیح بدم زواهرش اینطوره این که ما به اجاز ادراک می‌کنیم عقل عملی غیر از عقل نظری شاید آیه مبارکن اشاره بیدیم دوتا باشه نه نهو کهان این عقل عملی جهولن عقل نظری این ضد این دوتا رو بگیدیم چون انسان زلومه این ظلم باید برداشتورش میشه عقل جهول تبدیل به علمی میشه. و ها کلا قوله تالا یرفه الله ها من اومن کن و ها تول علم درجات این رفع درجات به خاطر همینه که ایمانه که این یعنی معیار درجاتی الله سبحانه تعالی تحدیر به الله هم اینجا شده یعنی هیچ موجودی در روی کره زمین در روی زرات وجود نه ملائکه و غیر ملائکه اون درجات ایمان و درجاتی که برای مؤمن یا برای آلم قدرشی اونتون درک بکنیم چون اسماده به الله بر. و یرفعه لالذین آمنومن کن و الالذین اوتول امن درجات اون الالذین آمنومن کن عقل عملیست و الالذین اوتول امن عقل نظریست زواهر خدا آیاذ که جان آورده اون بخشش طول می‌کشه پس ولزار این حسن عدل و خوب در مثل حیوانات هم نمیاد چون اون عقل عملی وجود نداره در اونها و در درنتیجه واجب الوجود در نمیاد چون اختیاری اونجا مصدر نیست اون فوق این حرفاتون خوب حالا درمیون این حرفا در اونجا این کیشون میگه وجل الله این وجل علی الله شاید ایشون به اون تصور معتزلیه که میگن وجل الله که هم یه چیز دیگ دارن که مراد از وجوب علند هم مراد عقل نظریه چون یه چیز دیگ هم دیدون یادم میاد چون صفحه کجای بحث از من تداصلشون خیلی زیاد وسط هم لازم شده که احکام عقل عملی در مورد حضرت سبحان الله احکام عقل نظریه چون عقل عملی در مورد حضرت حق جل جلت خو درتو جاری نمیشه. علیه حال این نیست این مراد اینه که چون ما با قول تعبیر قرآن زلوم و جهول هستیم و چون ایمان و علم هست، تبری این تا جایی که توانیم هم تقی علممون و هم تقی ایمانمون باید قلع ماده فساد بشه. این بحثی به حضرت حق سبحانه و تعالی هم نداره. این چنین مطلبی که ایشون فرمودن روشن نیست. اصل این مطلب که حسن عدل و قبغ ظلم این درسته اصلش. حالا این اصل یا یک اصل دیگر هم داره، اون بحثی دیگه‌دیره که جایین بحثا نیست و لیکن این نتیجهش محدودتر از حفظ کتب زلاله ولی ازاد میتونم به امکان مدرک و حجوب اطاعت و غورمت محصیل امری تعالی به غل ماده فساد فلا زیر علازاله الا فی موارد خواسته این مطلب دونیشان که حجوب قلع ماده فساد در موارد خواسته کما فی کسر اسنام و سلمان و سایر حیاکر العباده، این مطلبی که ایشون فرمودن که این درسته ما به طور کلی عرض کردیم اون مقداره در زل یا در قبح این درجاتش فرق میکنه هم تقییناً و واقعا و هم به لحاظ مقام اعتبار اون فرق در مقام اعتبار ها ما فعلا مقام اعتبار رو دیدیم در مقام اعتبار این جوریه حالا من زاویتشو می‌گم اگر آمد نهی از وجودش خورد این یعنی همه فسر رو من بود. حتی نگه مثلا اگر آمد گفت این بطر بشون اینجوری تحبیر این بود اگر تحبیر این بود یا مثلا تعبیر در ما نهران احرق کتبه این احرق کتبه از نظر قانونی یعنی تفسیر قانونی مایده اگر جای آمد باقی احرق کتبه این تفصیحانیش اینه که خرایت اون کتب جز نیست نگهداریش جایز نیست, نگه نیست. بهشم جایز نیست اصلا احرق کتبه توش خوابیده وقتی آمد اصل وجود رو برداشت خالی نخواهی تمام اون موارد رو برمیگاره اما اگر آمد یک قسمت رو برداشت این حرف استاد رو اینجور بنابا آمد یک قسمت رو برداشت این دیگه نفی همه جهاد نمیکنه، کنه اثبات بقیه مثلا اگر آمد گفت که در اناه تلاهی آب نکن این دیگه معناشی نیست نگهداری اون اناه حرامه خرید خروشونه اناه این ها توش در نمیاد. این یه قاعده کلی در مقام استظهار در احکام از اون قاعده کلی اینه اگر آمد کنم اصلا نباشه احرف کتوبه یا اینا در حلقه هیف البالو در درهم مخشوشی ما با بنده داشت دو بالو اصلا نباشه. این اگر بود این یک نکته بسیار تنی و لطیفه این مسترده من ازمان جاذبه همه هست بلکه بالاکر مثل شیخوی اینها بگنی اصلا مسترده نقیه مالیت اصلا مالا نیست بکنید. این بحث های قانونی چند بار توی مباحث مقاصل بهش اشاره کردیم و نظام اگر دلیل ما این بود لا تشرفی آنیت زن و زه از این اثبات نمی توید بکنیم خرد حروش تلا جایز نیست آنیت تلا جایز نیست از این اثبات نمی توید بکنیم حفظ آینیت تلا جایز نیست من در آنیت طلا و نقره نمی خورم آب تو خونه گذاشتن از این در نمی و لذا اگر یادم باشه مرحوم شیخ ولی این که بگید حرمت به داره آنی تا در اول سرزه لا لایوغنون که اندام ایغان و یقین به روز قیامت ندارن این اصفاد بخواهی بکنن که از این معلوم میشه که اصلا تمتع به این جایه اگر عنوان این آمد شامل زهر میشه شراب میشه نگهلایی میشه دقیق در اون دو رو این یک بحث کبروی یک بحث صغربی آیا در همه محرمات اینطوره؟ آیا خوبی نه؟ ما در محرمات محدودی داریم مثل حیاکل عبادت این طوره مثل امر به و اونها باشید اما در کل محرمات نیست این یک تصابر یک تصابر دیگه نه ما هر جا تعبیری که داشتیم تحریم بود هرمه علیکم این هر محرومیت یعنی شما محرومی اطلاق محرومیت از همه جا نگه ندارین نگه و فروش نکنید مطالعه مثلا در کتاب نکن محروم نمشین محروم اینجا ولی زاما از کردین مثلا هرمه علیکم میکه البته خب در معالم کنین جایدی هم تو عصود داره که مراد از هر افراده از هر آثاره مثلا تحریف لیکن یک که دیگه هست اینه که نه وقتی آمد گفت هر رمه علیکم المیته حالا یا مطلقا یا در خصوص قرآن هر رمه علیکم المیته این هر رمه علیکم المیته همه چی در میرسوش در میاد عدم جواز اخیلش نمیشه نمیشه با, با پوست رو پوستین درست کرد نمیشه اصلا گوشت رو نگه داشت نمیشه خیز فروش کرد نمیشه تو میکه نماز خون اگر به لباس خود تر بود نجست بشویید این ا بسه یعنی شما محرومی این محرومیت تمام اینا رو داره پس یک بحث کبروی بود که ان روشن شد یک بحث صغروی بعضیها ها اعمال اصولا ما احتیاج به حرمه نداریم اصلا طبیعت هر چیزی که محرم بشه همینطوره ولی زاه مثلا فرضش حتی در باب نجاسات آمدن گفتن وقتی شاره میگه ور روزه فهجور ها رو روزه نجس هر جده جدا کردن جدا شدن تو از اونها جدا بشو این اطلاق داره یعنی شما نه نجس میتونید بخورید. نمیستونیم تو لباستون کن باش نماز بخونیم تو خونه نگه هم بذاریم نگاه کنیم. این بحث ما ببینید حفظ کتب زلام اون نقطه فنیش اینه اگر ما صادت کردیم کتب زلام مثل حیاکل عبادته این تمام جهاتش باز حرف بشه نتیزه چه میشه خوندنش آریه گرفتنش خرید و فروشش نگه داشتنش تو خونه خجیلی کردنش تزدین کردنش پول گرفتن برای استنساخش چاب کردنش تمام این ها میشه محروم حتی شکر این حفظه کتوب زنان اینه موشه این چون من همون استاد در حالت محبه بگن ما همچی اطلاعی نداریم نصیفنیه بایدیشان خیلی شما لگاه زهر نباشه ما هم همچی اطلاعی نداریم حالا شما مثلا ممکنه هست برای اطلاعشون بردشون خودشون آیستو میارن توضیح بدم مثلا داره ایشون تمسح میگم با یه بشتن رو قول ازو که شیخ هم کرده کده و قول از ازو ممکن است از شما جواب ایشون بدید ایشون میگه مثلا حیاکله عبادت نیست ممکن است شما بگید این بشتن و قول ازو معناش هم نه چرا چون اشتنا خودش معنا جنبه جانبه از جانب اشتنا یعنی شما یک طرف باشین یک جانب باشین این یکی یک جانب باشه. بگرد کنیم. اصلا وشتنه بود یعنی چی؟ یعنی شما مسلمان ها وزیفتون اینه که نسبت به قول باطل، ایره هم، که قیبت قول زور به قینا تصفیل به قیبت تصفیل شده به درو تصفیل همه به همه همه همشم... قول زوره. زور یعنی کرد یعنی چون سراث مستقیم انسان باز باشه فتفت الهی باشه هرچی کجه از فتفت الهی خارجی به لازه همه را قول زوره باشه شد کشت تعدیر قرآنی از اینها به قول زور در این اساسه تمام اینها کجه البته کجیه هاشون مختلفه اما مثال این روز از یک میلیون خط مستقیم با هم منتده میشن یک میشن اما پنجتا خط غیر مستقیم کج نه با هم انتباه دارن نه با خط مستقی انتباه دارن. این وجهتنه با قول از زور ممکن است روشن شد استدلاده ایشان شده برای حیاتل عبادت ممکن است کسی بگه نه آقا اونجا هم داریم اونجا چی داریم وجهتنه با قول از زور یعنی از هر سخن کج از هر سخن انحرافی هر سخنه باطل مثل اون کج کجراه هر کاری که کجراه از باطله شما بگیم اشتنه برو این طور بگیم بگیم ما وقتی تفسیر قانونی میکنیم خوب لفت بکنیم اون مناسبات لحظیش هم مراعات بکنیم سوال اینا میان بگن هر را را را کن و اشتنه با قول از زور هر دانه حرام حالا اونجا محرومیت آمده اینجا اجتناب آمده مراد یکیه بگیم نه بیان اون ماده رو هم حساب بکنیم روشی اگر میخواد خوب دقت بکنه، اگر میخواد اعتبار قانونی رو بفهمیم اعتبار رو طبق همون ماده بفهمیم روشن شد مثلا؟ مثلا لاثاون وعلان اسم و ادوان بر ادوان ائانه بر اسم، اینجا ماده داره. هیچ‌کس نمی‌کنه جوابش رو بریزون ما روشن بشه. اون ماده اوم. اما مقدمه حرام ماده نداره. چرا که تو اصول تو فقه آوردن چرا بهت مقدر نحرام رو تو اصول رو بردن بهت احانه بردشتون تو فقه قبادفقی آوردن چون در احانه برد خیلی در تفصیل در آن خیلی هست تفسیل بیشتر ازامن این اون خودش ماده داره ماده اون یعنی چی؟ اون یعنی کمک یعنی یه گناهی میخواد انجام بگیره شما کمکی کمکیم کمک یعنی چی؟ یعنی شما گناه رو انجام ندادی فعل شما آمده در ترکیب گناه تاثیر گذاشته این اسمش کومته این چرا اینطوری خلاف خوب دقت بکنید این معناش اینه این دقت مبنا چون بعضی از مبانی این معناش اینه که ما حتی در احکام وقتی می‌خوایم اعتبار قانونی رو تفسیر بکنیم اون ظرافت‌های ماده رو هم در نظر بگیریم خوب دقت اون زرافت ماده رو درج ژرافت ماده چیه اجتناب یعنی جانب بودن شما یک جانب باشید یک ور خیابون باشید قون دور اون ور خیابون و نزا داره وجنبی و بنی عن نعب در اسنا مثل حیاک عباده میگه آرخونه یا و حیاک عباده خب شما بار خوی بکنم این وجنب و بنی نه یعنی نعبه در اصنا اونجا ماده جنگ آورده چی و نونو برس. توی قول زور همون ماده آمده اون وجنب می و بنی یعنی من رو در یک جهر قرار بده بطار یک جنب اصلا ما با هم قاطی نشیم بطر بکنیم ما با هم قاطی نشیم بطر یک تر ما یک تر هست وشتن مون قول زور شما یک تر قبول زور یک طرف این من بله ما بعد عبادت یک طرف ما یک طرف درست شد؟ اونجا قبول زور گفتن توجه فرمه زرافت شما ممکن است این نه اینا چون در بناشون بینه که این زرافتهای مادر توی مقام اعتبار نمیکشند بیا بگیم ذراحت های مادر رو توی اعتبار مای بکشیم. اینطور بگیم وقتی گفت وجه تن بود بله تصادا قبلش هم هست چی مباره که قبلش؟ وجهن با رکس من اوسان وجهن با قول از یکی توی ق این پ این در سو ح سریسه بود؟ ارست منر اوسان وجتن و قول از زور بگیم اجتناب معنی حقیقت اجتناب اینه شما یک طرف قول زور یک طرف خب این معناش چیه؟ این معناش اینه که هیچ نه به قول زور تزلندگی شما باید وارد نشه معناش همی پول بگیرین کتاب زور بجریسین استنصاف پول بگیرین چاپ بکنین پول بگیرین سمت یه جور وارد شد یک جوری مخالط شده تا. این اجتناب در مقابل خالطه هست یک جوری یک چونه این حرام از خودتون این کلمه حرام که می کار شده بگید باید ماده است نه خود اجتنابو از خوش در بیاریم یعنی شما مسلمان ها در زندگیتون باید جوری باشه که قول زور یک طرف شما یک طرف اون یک جانب شما یک جانب به هم نکنید و لظ من از کردن در کتاب توحملول غول که شایدم به عکس تصور و یکی از اسباب اینکه این که, این که رووا محدیوش ک و اول اولی کش این بود همین که آگویم هم شغال میکن دی مطالی است که خب کسی فصاب بشنه. در همین توول اوقول که گ دست با هم به منمسه رواسشی میخونیم وقتی به نجل یه لاظ رو به او شراب وق و حیبت او و انصاسحق و تقل و بر به جمع و و جو خیلی تحبیر عجیبیه من کران ارز کردم ما فعلا دلیلی غیر از این وقت تحبیر این تعبیر نداریم مفاق این حدیث اگر ثابت بشه اصلا نگه داشتن خون در خونه جاید نیست چون نجس. اصلا خونشون که ایستفرم وجود تو تاقصد داریم این عبازت و حفظ مخون معلومشون اون چیزی که خدا نجست کرده قذر قرار داده، رشت قرار داده،, قرار داده. این با کلن از زندگی شما خارج باشه. ولی زا من دیوزا نهاز کردم یک شواهدی از روازت حقل اقول در فتوای شیخ مفید و توسیه هست که همینه. که این حفظ، حفظ کتب زلاف، حفظ. حفظه همسا، حفظه؟ ما جایی که داریم که نگه داشتن نزدیک جایز نیست همیشه از دوباره نصف چیز گرفتی کلی فکر می‌کنم این فایده روستا میگن آرکویش کنی من خوب آرکویش من در واسطه دوباره مثالی می‌کنم که راست بودم راسته می‌دونم اما من فکر می‌کنم یک ای آشی می‌خواد وارد می‌دوند بهتر بود این صحنه هم الان در دنیای اوالادی همینه چند بار از کردم از اون تو بیمارستان ها سوزن که مصرف شده اون وسایل همه رو می‌امدیش سوزن نگه نمیدارن زندگی به سن موکن تمیز باشه هیچ نوع پلیدی هیچ نوع پلشتی در زندگی انسان نبود واقعا حرف عملهایی خوبیه ولی عملا فتحه ندادن تصداد همه بسیار خوب خونده توی شیشه دارت خونی چه داره خب پلیده با دویده دو. چرا میکره تو اتاقش نگرفت داره عبارت این از کار فتحه نیست شنید مطلب ایشان یک مطلب ایست بسیار لطیف به من و شاید همی که از اثرالی که این روایت اعراض شده ازش که قطعاً اصلی داشته این نوع منه انکار بکنیم و یقیناً این روایت اصلی داشته که قبل از صاحب توحفر بوده ففر رزادش نهار کرده و قطعاً ففر رزاد این کتاب نگرفته هیچ شواهد ما موجود نیست که ففر رزاد که اصلاً توحفر اغول بعد است ففر رزاد توحفر اغول سالهای, سالهای اگر حرف بسا نو سریهای شام علویهای شام راست باشه که بین اونها بوده شاگرد حسین همدان باشه باز سال 67 افتاد بتونم از ایشون اطلاعی ندارم از خودمون باز سال 67 افتاد شام بود کرده باشه و شیخ الرضا قطعاً حدود سال 30 نشسته شده هر چیزی باشه بین 50 تا 30 تا 20 کتاب زهرا رضا قطعاً از فرهو به گل نگرفته این جای شوهه نیست داره ما. قطعاً مسئله کتاب دامن الاسلام احتمال داره تعبیره بشه همزمانه تعبیر متقابل قول ولی بریه چون عبارت دامن الاسلام باز به تعبیر قول نمیخوره مضمونش میخوره عبارتش نمیخوره و لزارش تواحده با قطعی است که که این روایت اصل داشته در اختیار فقه بوده ساز فقه هم بوده فقه رضای ملغار کامل متن کاملش در تعبیر آمده که واقعا متن علمی اقتصادی است انصاف قابل بعضی و مناقشه است، حرف نیست. اما خود تره بحثش چهار مورد درآمد مشخص کرده، 25 مورد هم هزینه. انسان از چه راهی درآمد میکنه، چجوری هم باطرح میکنه؟ 25 تا هزینه داشت، چهار تا درآمد، هیچ ربطی دیگه علل اصلاح و بین موضوع نداره، این منحصر به خودشه این رابطه. انصافاً. البته اصرام میو مشکل اینه که اصحاب ما و قطعا تا سالهای سی اینها موجود بوده این در باید ترم شده چرا چرا نمیدونم شد برزدین احبان کیف ماکان این مطلبی رو که استاد فرمودن ریشه های این مطلب این که ایشون فهمده دقیق و لعمری تعالی به قلع امانده فساد فلا دیل علالالک الا فی موارد خاصه کما فی کسر الاسنام و سلبان چون اونجا کسر آورد؟ از کثیری هم تمام تصرفات مجموعه خرید و فروش و نگهداری و اجاره دادن تو اتاق تمام اینا اینا بخاطر میگم کتب زلال هم از همون تمام و بس خب این کتب چرا؟ بحل ده بحل ده. چون گفت عقل بود چرا ماده 30 از چون شما یک راه اصلا تو دیگهش قلب میگی وقتی میگی شما یک طرف اون یک طرف میشه قانع نمی راست میگه اوه کوس به ضررانه نگاه نداری حساکون بله مثلا هوول ازو رفتن شما عقل استفاده نمی‌کنید نه بگیم حکم عقل به قرعه ماده فساد یعنی به جميع انواعش و لزوما مثلا ذلیلش هم این میگیم الان برای خیلی که اصلا اسلام دین اسلام نداره دین راست مثل این حالا در یا بودای این بودایی خب اونجا خیلی از مثلا چیزهای سایفهای خارجی غیر اخلاقی سلطر میشه با اینکه جین هم نمیدون بگی اون اصولا حکم هر هرچی در جامعه منشه فساد و این حدافه بارد از بگذن به انهای مختلف یکیش هم حفظه شه یکیش هم وجوده در این اصلا اینترنت نسینترل کار که اون هم نباد باشه این مراده از فساد از, از این جواب که این مطلب اجمالان درسته اما اون تشخیص حدودش مشکل داره حالا ان شاء عرض در نتیجه نهایی این هم بله ایشون میگه نعم الاكا الفسا موج و دفع الحق و سد باب احیاء و تشديد کلامی وجب دفع او این این مطلبی که ایشون در فضوئی ایشون درسته ادعا اینه اصل دعوا اینه این شد فهم... من چون بخاصن کمی چون بعدن که آیه ورسله قوم زور اینجور فهمیده یعنی شما خودت از سوال بکن قوم زور در هیچ جایی زندگی شما نبات باشه شما این ورش یابون قوم زور اون ورش هیچ تماسی بی هیچ نحمی باشه پیدا نداره این ورشه مثل بچه‌ها با رفتم در اوسان پس این بحث رو کنیم این فهمیده میشه این روش بحث درسته از ماده اشته بود جمیل رو بفهمید یعنی به عبارت و ولی مطلب رو هم از کردم اضافه در آیه مبارکه الا الان چجوری این لحظه چون که میاد پیر میشیم یا میشه مثلا این روی مطلب را در مطلق محرمات در کتاب تعقل عقول و زرعه و عقود یا در خصوص نجاسات و زرعه نگاه میکنن الایوه الایوه شبیه این مطلب رو هم در عبارت تعقل عقول هست که گفتن کونی الوجه سانی قول و تعالی این الوجوه سانی قرار داده که آیه مبارکی باشه چون من الان آیه قول از رو گفتم وقتی تموم شده یک کلمه الوجوه ثالث بخونم چون قول ازو قول و تعالی گشتن به قول ازو وفیه استدلال درست نیست ان قول ازو بحث سره دلیل که و سعی آتیه مبحث حرمت الهنا تفسیر قول ازو در بناف جمعت من روایات این در روایات ما هم تاکید شده احل سنت هم خیلی بحث دارن. اهل سنت این بحث خیلی حساسن. که ها یا قبول زور غنات هم از عده حتی مثل ابن مسعود نه اصوله که سه مرکبه بگه. والله وله غناه. والله وله دیگه هالا. حتی هم خوده که چرا؟ که من از کردم. در خصوص مدینه. یکی از عجایب اینه که امین زمان عزد سجاد و اینها غناه به نحب عجیبی رواش که من توضیحشو هر کردم حتی در شام با که مرکز خلافت اموی ها عهد فاصل فاصل بود اینقدر که جنازه در مدینه رواج در اونجا رواج نداشت مجالس جنازه متشکل میشد حضور فراوان بود یک داره دلایل اقوامی که از موقعه ها که رفت اونجا چند دفعه گفتن گفت این که جنازه اون اتاق و بیرون اتاق هست فقطستون پشت, با. اینقدر پشت با و اینقدر که پشت بام اونجوریه که اصلا با همات سر کردن پای این بیچاره مغنیه مطرب قبل از اینکه بخونه خودجا ور، خودجا میان جلوجا و این واقعا شیشه عجیبی هستن یکی از عجایب روزگار و ایده از علمای اهل سنت ابراهیم چنگ نری عبدالرحمن اوفه در کتب اهل سنت ترکی از بزرگانا از و میکنه خیلی از بزرگان شده این اصلا میگفتن وقتی ایشون در حدیث‌نگو میگفت نه اول دو تا برام موسیقی بخونه بنام حدیث رو این اول دو حدیث اصلا حدیثی که اول باگدا چون یک اگری اصلاح که اصرار اسمه وانان علم در قید غنا اسم این آن و از این طرف هم اسم ادهی از صحابه مثل عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عباس اصلاح این آیه باره که مراد غنا این اصراری ای که در کتاب اهل سنت هست بخاطر این جرده از صحابه و تابه و در روایات ما اینشالله تو بحث غنا متعرض میشن فی جمعه که این روایات بعدیشون لا منافعه بین تفسیم از ذکر ما فی ما تفسیر لا یک در سه لا به مصداق لا به نفع تلک و آدم ذالک ادم آدم ذالک مصداق بله بله القرآن بله یه جیمایشان سر هم هست ما بحث باطن و قرآنی توضیحاتی از کلیشون ازت آوردن فهم ده بیشتر انجام آدم دیگه و از ما در بله و کیف کان هر آیاتو قریب استن اما نهفی خب حسین از است این حسین شما با فرمون کیل قران لایق هست خود اسرائیلی هم مثلا بگیه قوم یه هر چی که با... کش باشه او بتو بذارم کج چه فرق چون که آیه تا سر قول قناع قول, قول, خب... قول زور خیثا قول زور خب کتو بذارم قول زوره چه فرق نه یا اطلاق روای لا یقال ان الایات ها هر مصادیق الیکسون الله فعلاً یه بال غایت ما یوستفاد من ال آیه وجود بود اجتناب آن تکاملشون تقبل سخن گفتن گرفتن. از که اون بال غایمانش سخن دارمانش سخن گفتمشون سخن گفتن گرفتن. و اما ادامه او حالا و الله لرچه جمیع جمعی اما که اکثر تواریخ لرچ به با ولی این و الله لرچه ادامه این شاید این اشکال در کلمات ما منتظر هم آمده اونیه الفاظاً وارد نیست هر کسی تکلیف خودش را بدون تکلیف دیگران نداره اون کتابهایی که در اختیار خودش هست باطل هست باید اونها رو این یک وصال یعنی اصلی نحوه استدلال وایی اون نحوی که من عرض کردم اطلاق اجتنبو نه این نحوی که ایشان گرسن. و قول هم به معنای سخن یعنی سخن کج کتب ضرار هم این سخن کج هر که بر طریقه مستقیم نباشه کج است. به نظر مناقضه نظر هم قول زوره، کذب قول زوره. حرفای کیفیتشون تو تلویزیون میذارن دروغ میگن قول زوره، تو اینترنت هم میذارن دروغ باشه. فهمی می‌کنی تو هر زور زوره دیگه، بعضی نمی‌گه زور, زور فارسی زوره. تمام اینها قول کج هستن و انحرافی هستن و افلاغ آی مبارکه. این اشکال مزموسات به نظر ما وارد هر خود نهازم.